در اصل پرتو حسنت تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه‌ای کرد رخ دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد عقل می‌خواست کزان شعله چراغ افروزد برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نا محرم زد دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد جان الوی توس چاه زنختان تو داشت دست در حلقه آن زلف خمن در خم زد حافظان روز تربنامه اشقتو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد